تهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم بادبا چنگ و چغانه نهادم عقل را ره از می ز شهر هستیش کردم روانه نگار می میفروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه زه ساقی کمان عبرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه نبندیزان میان ترفی که مروار اگر خود را ببینی در میانه برو این دام بر مرقی دگرنه که انقارا بلند است آشیانه که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود اشبازت جاودانه ندیم و مترب و ساغی همه اوست خیال آب و گل در رهبه آنه به ده کشتی میتا خوش برانیم از این دریاوی ناپیدا کرانه وجود ما معممایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه